ساعت پنج دقیقه به پنج عصر است از ساعت چهار یک سر توی حیات راه رفتم تمام نشریات، اعلامیه ها و پسترها را داخل گونی کنفی کهنه ای ریختم و زیر درخت انار گذاشتم کتاب هایم را دسته کردم و روی فرش چیدم بی, بی خاور نیست، حتما باز برای علف چینی یا وجین به صحرا رفته است اول تصمیم داشتم همه کتاب ها و نشریات را یکجا بسوزانم. حتی پیت نفت را آماده کردم. ولی فکر کردم این کار توی روز روشن خطرناک است. باید منتظر بیبی بی خاور و بانو بمانم. فکر میکنم با آمدن بانو و مشورت با او همه مسائلم حل میشود. به ساعتم نگاه میکنم. اغربه های ساعت کند میچرخند. میروم و در پشت حیات می سلام سرم را به در تکیه میدهم. نمی دانم قلبم از شدت ترس چنین به قفسه سینه می‌کوبد یا حیجان دیدن بانو سراسی معش کرده است. صدای مدیه را می شنبم. خده از پشت در بلند می و در را نیمه باز میکنم. وای ترسیدم. کلون پشت در را می اندازم. گوشه چادرش را می گیرم و دنبال خودم می کشم. به نظرم به اندازه کافی وقت تلف کردم. چه خبره چی شده؟ داوود کجاست؟ رفت صحرا مثل هر روز چادرش توی دست و پایش می پیچد و سکندری می یا امام حسین چی شده؟ هلش میدهم داخل اتاق احساس می از بالای حسارهای خانه چشمهای مواظبم هستند در را می بندم رنگ از روی بانو پریده کیف خودش و کتابهای داوود پخش زمین میشوند. همان جلوی در می نشیند. چی شده سعید؟ بیچاره شدیم بانو. مادرم چیزی گفته؟ نه. داری میری؟ چرا کتاباتو دسته کردی؟ سقاطیای علی رو یادت میاد؟ یادت بهت گفتم احتمالا بسته آخر رو باز کردن؟ خوب. حدسم درست بود. امروز اومدم مدرسه. خوب. با آقای سوپی صحبت کردن خوب اونو با خودشون بردن خوب اینقدر نگو خوب خوب قبل از اینکه بیان خونه رو بگردن باید همه چیز نابود کنیم چرا آقای سوپی رو بردن؟ نمیدونم حتما میخواستن همه چیز رو من ازش بپرسن تو از کجا میدونی راجب تو ازش سوال میکردن؟ پس راجب به کی می پرسیدن؟ بردنش یه گوشه باش صحبت کردند. جلوی من هیچی نگفتن. سرش را به دیوار تکیه می دهد. نفس نفس می زند. را رو از روی سرش بر می دارد. موهایش شاخ شاخ می شوند. آب گلویش را به سختی فرو می دهد. زیر گلویش خال ای رنگی به اندازه یک عدس دارد. می خواستم همه ای چیزها را به سوزانم. ولی ترسیدم یه وقت کسی بیاد. یه بوی کاغذ سوخته باعث شک و زن بشه. دستهایش رو روی سرش میگذارد و چشمهایش را میبندد. چه کار کنم بانو؟ بد جوری ترسیدم. یه لیوان آب به من بده؟ صدایش میلرزد. بلند می از دبه برایش آب می ریزم. آب را یک نفس میخورد. مثل دانش آموزی که برای درس پس دادن روبروی معلمش بیستد. جلوش می ایستم. منتظرم حرفی بزند. خودش را جلو می کشد و به دقت به کتاب های دسته شده نگاه می کند. اینه که جزء کتابهای های مسئله دار نیستن. به موقعش مسئله دار کتابها را زیر و رو می کند. عکس دکتر شریعتی را از روی یک دسته از کتابها ها بر دارد. این نه. می خوام چه کارش کنم. مال من. عکس را جلو چشمهایش می گیرد و لبهایش را به پیشانی دکتر شرگرتی می چسباند. ما هر چه داریم از این مرد داریم. تو را خدا یک کاری بکن. حالا موقعی سخنرانی نیست. عکس را کنار میگذارد. دوباره کتاب ها را زیر و رو می کند. از لای کتاب ملکوت تعدادی ورقه کاغذ بیرون زده. آنها را بیرون می کشد. اینکه داستان بلش کن. ازش یه صند میساززن بدبختم میکنن مال من کنارش مینشینم. احساس آرامش می دستم را روی موهایش می سعی می موهای شاخشاخش را بخوابانم. آخه برای چی اونو میخوای؟ می یه روزی روزگاری چاپش کنم. تو از منم دیوانه تری خب بلند شو کتابا رو با خودت بیار تو کاهتون. برای چی اونجا؟ میذاریمش لای کتابای کتابخونه. مسئولیت اون کتابا با ما نیست. مادرم همون روز اول با پسرموم شرط کرد. اون جایی نمیخوابه که آبزیرش بره. آخه اینا که مهر کتابخونه ندارن. ای بابا چقدر ای. کی میادن همه کتاب کتابو یکی یکی ورق بزنه تا مهر پیدا کنه؟ پاشو. بلند میشود. مانتوش را از تنش در می아ورد. هیچ وقت او را با بلوز و شلوار ندیدم. اندامش آنقدر متناسبن که نمیتوانم آنچه را در ذهنم میگذرد بر زبان نیاورم. بانو، چقدر بلوز و شروار بهت میاد؟ جواب نمیدهد. دسته ای از کتابها را می میکند و بیرون میرود. من هم دسته دیگری از کتابها را برمیدارم پشت سرش راه میفتم. کاهدان تاریک است، برق ندارد، در را باز میگذارد. باید یک کمی به خودت زحمت بدی، آقای مدیر. آقای مدیر را به شیوه اهالی روستا ادا می‌کند. "باید کاها رو کنار بزنی و چند تا از کارتون‌ها را بکشی بیرون." کتابها را روی زمین می‌گذارم. کاها را کنار می‌زنم. غبار کاهپینی‌ام را تحریک می‌کند. عطسه می‌زنم، پشت سر هم. "بُر کنار کارتن است." روی زانوهایش می‌نشیند و کاها را کنار می‌زند. برو بقیه کتاب‌ها رو بیار." کتاب ها را دست دسته می آورم و کف کاهدان می گذارم هر کارتونی را که بیرون می کشد در آن را باز می کند و به سختی چند جلد از کتاب های من را و سطح کتاب های کتاب جا میدهد. هر بار که وارد کاهدان می شوم، عدسه می زنم دمه در از کاهدان بیرون می جلو در می ایستم و تماشایش می کنم تمام لباس ها و موهایش کاهی شدند هنوز چند جلد کتاب روی زمین هست از یکی از کارتونها چند جلد کتاب بیرون میآورد و کتاب‌های من را بین کتاب‌های دیگر جا می‌دهد. در کارتون را میبندد و چند جلد کتاب از کتاب‌های کتابخانه را زیر کپه کاها فرو می‌کند. یکی یکی کارتون‌ها را روی زمین می‌کشد. دوباره سر جایشان می‌گذارد. روی کوپه کاها میخوابد و با سینهش کاها را روی کارتون‌ها می‌ریزد. از حالت خوابیدنش روی کاها خنده‌ام می‌گیرد. بخند جناب سعید خان، بخند، نوبت ما هم میشه. با دستش کاه ها را مرتب میکند، هیچ کارتانی دیده نمیشود. از کاهدان بیرون میآید نفس نفس میزند، چهرش را لایه از قبار پوشانده. روی موجه بلندش قبار نشسته و لابلای موهایش پر از کاه است چیزهای اصلی مونده، به گونی زیر درخت انار اشاره میکنم. سوقاتی های علی بیارشون گونی را از زیر درخت انار برمی دارن به طرف توالت می رود میخواد چیکار کنی؟ بروی کبریت بیار گونی را جلو توالت می گذارم و کبریت را از جیب بغلم بیرون می آورم بینید که نسبت به بوی توالت حساس نیست این بار دو نفر هستند. یکی از آنها همان مرد میانسالی است که در مصادره خانه اسفندیاری فرمانده بود و دیگری جوان کوتاهی که از لهجه و صورت آفتاب سوختهاش میفهمم اهل همین منطقه است. هر دو کلاس را تعتیل کردم. دانشآموزان در انتهای حیات گروه گروه دور هم نشستند و با هم صحبت میکنند. انگار ترس من به آنها هم سرایت کرده است. مرد میانسال لحجه محلی ندارد. به نظرم مشهدی است. لحجه شبیه لحجه دکتر شریعتی است. صندلی فلزی کلاس صبحی را هم آوردم. خودم روی نیمکت مینشینم و سندلی را به آنها تعارف میکنم. وقت شما و بچه ها را هم گرفتیم ببخشید. مرد میانسال با لبخند این جمله را میگوید. خواهش میکنم. آقای نوری قبل از آمدن تان به شمساباد، آقای سوپی را می نخیر. نگاه مرد جوان مستقیم در چشم می نشیند. شما سال قبل کجا بودید؟ قنات نو، تنها معلم آن روستا بودید؟ بله، هر پنج پایه را خودم درس می دادم. خدا خیرتان بدهد، حالا منتظرم از رابطه‌ام با نساب بپرسند. رابطه تان با آقای سوپی چطور بود؟ خوب بود. با هم مسئلهی نداشتیم. مرد جوان ساکت است به نظرم کاره ای نیست. تا آنجا که ما میدانیم، شما اول سال که به اینجا آمدید متعهل بودید. چرا بعد از جدایی از همسرتان با آقای سوپی هم اتاق نشدید؟ مدتی با مادرم زندگی می کردم. راستش آنقدر با آقای صبحی صمیمی نبودم که با او در یک اتاق زندگی بکنم. مرد سکوت می کند. حالت تفهو دارم. میدانم حالاست که از رابطن با بانو بپرسد. دستهایم را روی میز چوبی میگذارم و جابجا جا می شدم. صدای ترق و تروق نیمکت در میآید. دلم میخواهد علت این بازجویی بسته علی باشد تا رابطن با بانو هرچند میدانم مجازات آن سنگین است. آقای صبحی با کسی هم رفت و آمد داشت نمیدانم. به نظرم منزوی بود هیچ وقت کسی را ندیدید که به دیدنش بیاید گیت شدم چرا صبحی را بهانه می کند چرا انقدر طولش می دهند یادم نیست نه به ذهنم فشار می آورم چهره مردی را به خاطر میآورم که با موتور به مدرسه میآمد و صدای موتورش تا لحظاتی جو کلاس را اشفته می کرد. صبحی او را احمدی پسرعمش معرفی کرده بود. شما مطمئن نیست؟ راستش من امسال خیلی گرفتار بودم. سرم که خودم بود. مسائل شخصی هم نمیگذاشتن اطرافم رو خوب ببینم. بله میدانیم. چرا این حرف ها را زدم؟ چرا مستقیم آنها را سر بحث اصلی بردم حالا اگر بپرسند این مسائل شخصی چه بودن، چه بگویم آقای نوری شما از خرمند سوزی در روستای جوکاران چیزی شنیده اید بله پارسال شنیدم وقتی قنات نو بودم از کی شنیدید از مردم همه میدانستند فاصله قنات نو با جوکاران زیاد نیست میگفتند خرمنها را شبانه آتش زدند نمی گفتن کی آتش زده؟ هرکس یه چیزی میگفت. بعضیا بعضی ها میگفتند عشیر آتش زدند ظاهرا بین عشیر ایل سلیمانی با اهالی جوکاران سالهاست دواست بعضی ها میگفتند کمونیستها آتش زدند برای اعتراض به نظام ارباب و رعیتی بعضی ها هم می آتش سوزی عمدی نبوده بانوس یکی از کشاورزا چپه شده و آتش از خرمنی به خرمن دیگر سرایت کرده هر دو مرد لبخند میزنند خودم را آدم ساده احساس میکنم که بازیچه آنها شدم از هر هایم پشیمانم از خودم بدم میآید چرا انقدر هر رافی کردم چرا هرچه می دانستم گفتم ببخشید موضوع چیه من کاملا گیج شدم چیز مهمی نیست خرمنسوزی جوکاران چه ربطی به من یا آقای صبحی داره؟ تا آنجایی که ما میدانیم به شما هیچ ربطی ندارد مرد میانسال با تعنی از روی صندلی بلند میشود مرد قد کوتاه و جوان با کمی تأخیر بلند میشود به نظرم سؤالی دارد که جرأت پرسیدنش را ندارد ببخشید شما در اتاق آقای صبحی را گفت کردید؟ بله دیشب آخر شب یکی از بچه مدرسه خبر داد که در اتاق آقای صبحی باز است و سگی یکی از اهالی داخل اتاق شده و کلیدش پیش شماست؟ بله دست کلیدم را از جیب شلوارم در می آورم. لطف کنید بازش کنید به طرف اتاق آقای صبحی می رویم حالا مطمئن هستم آنچه اتفاق افتاده به آقای صبحی مربوط است. شام آبگوشت بزباش بود با پیاز و کمی سبزی ترخون یک گودبای پارتی حسابی بانو سفره را تمیز می کند امشب کم حرف میزند و کمتر به من نگاه می کند داود با چاقویش به جان یک تکه چوب افتاده است حتما باز هم میخه چوبی درست می کند بیبی خاور به دیوار تکی داده و چپق می کشد او هم فکریست حالا موقع مناسبی است باید کار را یکسره کنم بلند می شوم نگاهم با نگاه بانو تلاقی می کند بی, بی خاور لطف می کنید یه دقیقه تشریف بیارید اتاق من از اتاق بیرون می آسمان صاف و پر از ستاره است دو شب دیگر باید کلی راجب این آسمان برای خانواده‌ام طرافی کنم ساکم را بستم و گوشه اتاق گذاشتم وقتی به آن نگاه میکنم به یاد نساء می افتم. نسهپاره پاره اش را چنان رفو کرده که مثل اولش شده است. بیبی بی خاور با کمی تأخیر می آید. می استم تا بنشیند. مثل همیشه جلوی در می نشیند. پیراهن پرچینش اطرافش پخش می شود. هیکل کوچک استخوانی در آن پیراهن گشاد گم می شود. روبرویش می نشینم. بیبی بی خاور من رو ببخشید که جسارت می کنم و حرفهایی که بزرگترها باید بزنن به شما گویم. چیزی نمیگوید. فکر می کنم از تعارفم سر در نیاورده است. خودتون خوب میدونین که من و بانو همدیگر رو دوست داریم. سرش رو پایین میاندازد. به نظرم ترکیب دوست داشتن رو نابجا به کار بردم. باید میگفتم همدیگر را میخواهیم. با اجازه شما من فردا میرم تهران تا خانوادم رو برای خاستگاری از بانو به اینجا بیارم. سرش را بلند می کند و خیره نگاهم می کند نگاهش سرشار از ملامت است مادرم مخالفت نمی کند من مطمئنم این کلام پاسخی به نگاه ملامت بار اوست ولی مادرتو می شما نمزد دارین؟ داشتم به هم زدیم عید که رفتم به هم زدیم بیبی خاور باز هم سرش را پایین می اندازد دستش روی فرش دنبال اشغال می گردد کاری که همیشه میکند مادرتون راضی نمیشه آقای مدیر من مادرتون رو میشناسم جریان نسا فرق میکنه بیبی خواهر بانو کجا نسا کجا فرقی نداره اون دلش نمیخواد شما زن دهاتی بگیدین من یک موی گندیده بانو رو با هزار تا دختر شهری عوض نمیکنم بیبی لحنم لهنم عصبی است به نظرم قضاوتش درباره بانو عصبانی هم کرده مرد که به اجازه پدر و مادرش احتیاج نداره اگه بانو رو میخواین میتونین همین فردا ببرین عقدش کنین انتظار چنین درخواستی را داشتم قبلا بانو پیشبینی کرده بود گفته بود برای مادرم مهم نیست که من چجوری عروسی میکنم و با کی مهم اینه که یه نونخور از سر صفرش کم بشه اگه پدر و مادرم قبول نکنن حتما این کار میکنم ولی من مطمئنم اونها هیچ مخالفتی ندارند دلم میخواد برای بانو مجلس عروسی راه بندازم دلم میخواد خانوادم تو عروسیم باشن میتونی عقد کنی یا برای عروسی خبرشون کنی؟ بیبی خاور من دلم میخواد رسم و رسوم رو رعایت کنم دلم میخواد مادرم برام بیاد خواستگاری بیبی خاور جا به جا میشود یک زانویش را بلند می کند و با دستش چینهای پف کرده پیراهنش را می خواباند. آقای مدیر شما یه سال آزگار با گلبانو بودی توی یه خونه، توی یه اتاق، شب و روز اگه شما برین و برنگردین من چطور سرم و میونه مردم بلند کنم با بخت و اقبال ای دختر یتیم بازی نکنین خدا رو خوش نمیاد سرم را پایین می اندزم. لحنش ناراحتم می کند بر سر بانو با من چانه میزند انگار میخواهد یکی از برههایش را به من غالب کند من از کجا بدونم گل بانو مثل نسا سکوت میکند میدانم حرفش چیست خواهش میکنم اینجوری حرف نزنین بانو چه بگویم کدام واژه را به کار ببرم تا خودم آرام شوم و خیال این زن دهاتی را راحت کنم بانو دست نخورده است میتونین از خودش بپرسین اون از خودم بدم میآید میدانم این قضاوت به رابطن با نصاب می گردد اون کسی رو نداره آقای مدیر همه امیدش به شماست باید قسم بخوریم برمیگردیم این چه حرفیه بیبی خاور من خیر از جوونیت نمیبیی اگه با بخت و اقبال ای دختر بازی کنی بیبی بی خاور من به قرآن قسم می خورم که جز با بانو با هیچ دختری ازدواج نکنم. بیبی بی خاور بلند می شود. یک لحظه جلوی در می ایستد و میگوید: قرآن کمر اونی بزنه که سکوت می کند. نگاهش را از نگاه هم می میگیرد. از اتاق بیرون می رود.